وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و سيد المرسلين و آله و صحبه أجمعين اما بعد ترس عقيده يكاز ترسي مهمي هاتك انسان دمیتون دار این دارس تقلید بکنه بلکه باید اونطوری که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده باید بیاموزه به خاطر آموزش این عقیده و این اعتقادی که ما نسبت به خداوند داریم خداوند متعال جبرائیل علیه السلام را میفرست فرسته رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجالسی که بودند با صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ما یک حدیث در این باب ذکر می‌کنیم که این حدیث بیانگر بحث ایمانه یعنی تعریف ایمان و تعریف اسلام در این حدیث ما داریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی در مجلس صحابه نشسته بودن. جبرئیل علیه السلام حضور پیدا میکنند در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه هم نشسته بودن رضی الله عنهم اجمعین. همدان زانو بزنوی رسول الله صلی الله علیه و وسلم نشخصن صحابه هم تعجب کردن چرا زانو بزانو رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشینه اونجا هست که جبرئیل که معمور از طرف خداوند هست برای اینکه به صحابه بیاموزه ایمان یعنی چی اسلام یعنی چی میاد میپرسه در رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون جمع می پرسه ای رسول خدا اسلام یعنی چی اونجا هست که رسول الله صلی الله و پاسخ میدهان اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل عوامر الهی یا به شیوه دیگه که خودشون بیان میکنن اسلام انتشهد ان لا اله الا الله و محمد قصور الله و انتقیم الصلاة تا آخر این حدیثی که ما داریم اسلام یعنی اینکه ما شهادتین رو بگیم یعنی کسی نمیتونه مؤمن بشه کسی نمیتونه مسلمان بشه مگر اینکه که باید برای دخول به اسلام کلمه شهادتین رو بگه اعتراف بکنه که جز خداوند کسی نباید فرمون بردار بشه کسی نب... از کسی نباید فرمون برداری بکنه نباید تسلیم کسی جز خدا باشه در اون اوامر و نواهی شرعی بحث مسائل شرعی هست نه مسائل دنیاوی در مسائل دینی اگر خداوند لازمه ای کلمه این کلمه شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله اگر خداوند از من خواست که من نماز بخونم، من روزه بگیرم، من زکات بدهم، من باید تسلیم اوامر الهی بشم. یعنی باید بگم پروردگارا چون تو گفتی و من شهادت این گفتم و تو را عنوان معبود خودم و فرمامردار خودم پذیرفتم پس چش من نماز میخونم، پس چش من از مال خودم زکات میدهم برای فقرا و مستمندار. رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در جواب پاسخ جبرئیل این که اسلام چی هستن؟ اعمال ظاهری اسلام که موزظر هر مسلمانی انجام بده را اونجا به جبرئیل بیان میکنن فرمودن اسلام یعنی این که شهادتین را بگی اسلام یعنی این که نماز را بخوانی، اسلام یعنی این که زکات را بدهی اسلام یعنی این که روزه رمزان را بگیری و آخری شمید که حج خانه خدا را در حالت استطاعت اگر استطاعتش داشتی انجام بدی پس اسلام شد اعمال ظاهری اسلام شد در این حدیث انجام دادن. وزائف بدنیی که خداوند از اون خاصه غیر از اون شهادتینی که ما معمور و دستور بهش داده شدیم اما ایمان اونجا جبرئیل علیه السلام که معمور از طرف پروردگان یک تا بودن اونجا میپرسن از رسول الله صلی عليه علیه وسلم که ایمان یعنی چی اونجا هست که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پاسخ میدهن الیمانو ان تؤمن بالله و ملائکته و رسولهی و esque و الیوم الاخری و القدر خیره و شره بله ایمان اعمال قلبی هست ایمان اون اعتقاد قلبی هست باور قلبی هست اون چیزی که در قلب انسان باید انسان بهش اعتقاد داشته باشه باید بهش باور داشته باشه بهش باید بهش یقین داشته باشه به نسبت پروردگار ایمان به پروردگار یک طرف قضیه انت امن بالله ایمان به الله داشته باشیم به با اینی که معبود ما هست معبود به حق. یعنی اینکه فقط باید الله بشه. رسیده بشه ذالک ان الله هو الحق یک قسمتش برمیگرده به ایمان به خود الله یک قسمتش برمیگرده اعتراف به اینکه خداوند خالق و رازق و مدبر هست یک قسمتش برمیگرده به افعال ما خودمون یک نوع توحید ما داریم یعنی ایمان به خداوند داریم که بحث میگرده به توحید علمی و اونم ایمانمون در مقابل خداوند یک قسمت دیگر درباره ایمان به الله برمیگرده به اعمال ما ما باید در اعمال خودمون اعتقاد داشته باشیم که خداوند یکتا فقط باید پرسیده بشه یعنی یکتا پرسی یک قسمت ایمان به الله یعنی خداشناسی و قسمت دیگر یعنی خدا پرسی یعنی ما باید در افعال خودمون در کردار خودمون فقط خدا رو بپرستیم یعنی اگر خداوند بهمون گفت نماز بخونیم روزه بگیریم باید بگیم چاش هرچند که بنده ای مانع از این قضیه بشه ما باید طابع خداوند در این ام بشیم یعنی باید فرمان بردار خداوند بشیم این لازمه ایمان ایمانه به خداونده ما باید به خداوند اعتقاد داشته باشیم و اون چیزی که خواهزمون خواسته باید بپذیریم و بدونیم که هیچ کس مثل خداوند نیست حالا که یک قسمتش ما گفتیم بس میگرده به اعتقادمون در خدا و قسمت دیگر برمیگرده به اعمال ما اعمال ما یه قسمتش بر به نماز و روزه و قسمت دیگر بر به دعا به اون اعتقاد قلبیمون که خداون میشنوه میبینه و خداوندی که علیمه و خداوندی که علام و غیوبه از آینده با خبره ما باید این نسبت به خداوند اعتقاد داشته باشیم خداوندمون مورچه ریز سیاه رنگ در شب تاریک در دره تاریک روی سحقه سیاه رنگ خداوند او را می بیند داش را به می کند بله خداوند ارحم راحمینه نسبت به اون مورچه ره داره چه برسه با ماها انسان ها ما باید این اعتقاد داشته باشیم که خداوند هر بنده ای صدای هر بنده ای رو میشنوه و هر بنده ای که حاجتی داشته باشه نیاز داشته باشه خداوند دعای او را سجابت میکنه پس ایمان اونطوری که رسول الله صلی الله علیه و salam بیان میکنن در این حدیث ایمان یعنی اینکه ما به خداوندمون اعتقاد داشته باشیم این قسمت اول قسمت دومش ان تؤمن الله و ملائکته ایمان به ملائکهی خداوند ملائکهی خداوند کسانی بودن از طرف خداوند که خداوند اونها را با از نور خلقت کرده و خداوند از وصف آنها میگوید لا یعصون الله ما امرهم اون چیزی که خداوند بهشون امر میکنه هیچ وقت اطاعت نمیکنن نمی نمیکنن بنده مختاری نیستن که حق اختیار رو داشته باشند خداوند اونها را تکلیف را از اونها ساقط کرده و مأمور قرار داده از طرف خودش به بندگان خودش و بندگان مختار خودش خداوند پیامبرانی رو انتخاب کرده برای اینکه حرف خودش رو به مردم برسونه و برای اینکه حرف خودش رو به پیامبران برسونه کسانی را کسانی را موظف کرده کسانی را قرار داده از جبرئیل و دیگر ملائکه که یک وزی... قسمتشون از ملائکه وظیفه را ادا بکنن مثل جبرین و کسانی دیگر به امور امرار معاش مردم بپردازند. از رزق و روزی کسانی از ملائکه معمور به ابر هستن کسانی دیگر معمور به کوها هستن بله کسانی دیگر معمور به باران از آسمان هستن و ملائکه دیگر پس ملائکه خداوند کسانی هستن که سرپیچی از دستورات پروردگار نمی و معمورن از طرف خداوند به این که به امور بندگان برسند ایمان باید داشته باشیم به کتابهای آسمانی پروردگار بله خداوند برای اینکه که ماها گمراه نشیم برای اینکه ماها خدا را بشناسیم دستورات خودش پیامهای خودش را در کتابهایی که فرستاده و وحی کرده بر پیامبرانش برای بندگان فرستاده که بگه منم پروردگاری هستم که, که وجود دارم و منو باید بپرستید و ما رو باید من رو بشناسید حق من رو باید ادا بکنید های آسمانی از قبل زیاد بودن ابراهیم برای خودش داشت موسی برای خودش تورات داشت انجیل را خداوند به عیسی داد تا این که کتاب آخر کتاب آسمانی قرآن هست ما باید این های آسمانی ایمان داشته باشیم هرچند که بحث فراتر از اینه در بحث ایمان به کتاب‌های آسمانی پس خداوند حرف و سخن‌های خودش را وحی کرده در اون های آسمانی که فرستاده و اون بنواد دستور عمل ما باید بهش عمل بکنیم اما رکن سوم رکن چهارم ایمان که برمیگرده به ایمان و به پیامبران و تو من و ملائکته و کتب و رسوله بعد ایمان داشته باشیم به پیامبران خداوند از آدم علیه السلام گرفته تا نوح ابراهیم و بعد همین طور ادریس و یونس و موسی و عیسی و دیگر پیامبرانی که خداوند فرستاده و وظیفه وحی را به دوش اونها گذاشته که وحی خدا را ابلاغ بکنن و بشریت را نجات بدن و راه هدایت را نشون بدن اون یک راهی که اسلام هست اون راهی که دین حنیف انتخاب شده از طرف خداوند هست این الدین عند الله الاسلام و من غیر اسلام دینا فلن یقبل من کس غیر از اسلام را به پذیر خدا ازش نمی پذیره کس غیر از راه انبیا را بپذیره خدا قبول ازش نمی کنه چون دین خداوند اسلامه بر ابراهیم اسلام موعظه میکنه, میکنه و تعیین میکنه که باید دین تو اسلام باشه هوسم واسماکم المسلمین من قال سپس بعد از ابراهیم علیه السلام موسی میاد و عیسی میاد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد بله پیغمبران خداوند کسانی بودند که از طرف خداوند مأمور بودند به اینکه وحی الهی چنان که ملائکاش بر وحی بر اون پیامبران رحم می به ماها ابلاغ بکنن و پیامبران هم ادای این امارات را بینیکی کردند و همه اون چیزهایی که ما بهش نیاز داشتیم در زندگیمون اونها بهمون وحی اونها بهمون گفتن و بعد از اون کسانی که بودن در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون ابلاغ کردند بله ما باید اعتقاد داشته باشیم به این اینکه پیامبران خداوند حق اون مقام نبوت خودشون رو ادا کردن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند هیچ امر خیری نیست مگر اینکه من به شما گفتم هیچ امر شر نیست مگر اینکه من به شما گفتم چه امر خیری چه امر شری اون چیزی که برمیگرده به اخرت نه عمر دنیاوی چون عمر دنیاوی ما خودمون بهش آگاه تریم انتم اعلم با دنیا دنیاتون كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلام چنانچه میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیای خودتان شما آگاه ترید رسول الله صلی الله علیه و نی نه که به همون بگن سوار ماشین بشیم یا نشیم یا سوار اولاع بشیم. رسول الله صلی الله علیه و اومدن دین را بهمون یاد بدن. ان دین عند الله الاسلام دین اسلامه. اومدن اسلام را بهمون یاد بدن. اون دینداری داری را بهمون یاد بدن. خدا پرستی را بهمون یاد بدن. معامله و رفتار ما را با خدا به یاد بدن این وظیفه پیانبران خدا بود پس ما باید اعتقاد داشته باشیم به پیانبران خداوند اون کسانی که اسمهاشون در قرآن اومده این لازمه ایمانه اعتقاد باور قلبی هست که لازمه این باور قلبی در اینه که پروردگارا تو مرا نکردی. نکردی، پروردگارا تو مرا کنار نگذاشتی پروردگارا تو اون چیزی که از من خاصی را بر زبان پیامبران خودت وحی کردی و گفتی و من وظیفه‌ام هست که از اونها اطاعت بکنم و فرمانبرداری بکنم. باید حرف تو را بپذیرم. خداوند هیچ وقت ما را رها نکرده. 124000 پیامبر را خداوند فرستاده فقط برای نجات بشریت تا اینکه بگوید صراط مستقیم یعنی چی؟ کودوم راه مستقیمی و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه و لا تتبعوا السبل تا انکه راههای گمراهی مشخص بشه راه راست که مشخص شد راه اسلام که مشخص شد های گمراهی هم مشخص می شود راههای شیطان و راههای کسانی که به مبارزه پرداختن با پیامبران خداوند مشخص میشه در صورتی که ما راه پیامبران را بفهمیم پس ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند ما را رها نکرده و پیامبرانی را گذاشته و فرستاده که دین خودش و دستورات خودش را وحی بکنه تا اینکه به ما ابلاغ بکنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان خاتم النبیین تمامی آن چیزی که ما بهش نیاز داشتیم بهمون گفتم چطور نماز بکنیم چطور زکات بدهیم چطور روزه بگیریم و چطور حج خانه خدا را انجام بیم ما باید اینو باور اعتقادی داشته باور قلبی داشته باشیم خداوند هیچ وقت بندگانش را رها نکرده و هیچ وقت اونها را کنار نگذاشته بلکه کسانی را فرستاده که اونها به اونها راه حق را نشون بده بله و اونم دعوتی خیلی آشکار و واضح نه اینکه دعوتش گمنام باشه دعوتش غیر مفهوم باشه خیر خداوند وحم میکنه و اونم به زبانی ساده، لسان عربی مبین، به زبان عربی که مبینه واضحه تا اینکه مردم بفهمن و درک بکنند نه اینکه دین در کنار ما نباشه، نه اینکه ندونیم خدا را چگونه بفرستیم و خدا را چگونه عبادت بکنیم. انتو تؤمن بالله و ملائكته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر ولی اوم الاخر ایمان به روز آخرت باید داشته باشیم. ایمان به معاد باید داشته باشیم. اینه که روز رستاخیز هست. روز حش هست. ماها باید از قبل بیرون بیاییم. صحنه محشر هست. دنیا برزخ هست. پل سرات هست. بله ترازوها هست گذاشته می شود. ممازین حق. ترازوهای حق گذاشته می شود که اعمال ما اونجا حساب و کتاب بشه ولی ما باید باور قلبی داشته باشیم اعتقاد قلبی داشته باشیم که اونجا روز حساب و کتاب هست اونجا هست که اعمال ما در ترازوی اعمال قرار خواهد گرفت ولی در کنار روز آخرت و حساب و کتاب قبل از اون ما برزخ داریم در قبل ما را می روح ما کشیده میشه از بدنمون سپس وقتی که ما را در قبر خوابوندن دوباره روح به جسد ما بر گشت اونجا هست که منکران که بر ما می اینها ما بهش اعتقاد داشته باشیم این ایمان بر روز آخر سپس از اونجا هست که روح مؤمنین در بهشت از میوه های بهشتی میخورند و روح های کفار و مشرکین و گناهکاران عرضه بر جهنم میشوند چنانچه خداوند در فرعون و اتباعش میگوید و نار و یعرضون علیها قدوب و نوعشیا. شب و روز ارزه بر جهنم می‌شوبند ارواحشون در جهنم می سوزن تا اینکه روز رستاخیز بیاد تا اینکه روز آخرت بیاد ما لخت و برهنه از خودمون قبر خودمون بیاین بیرون اونجا که در صحرای محشر بی پنجاه هزار سال بندگان خداوند می‌روند نزد ابراه... نزد آدم علیه السلام آدم می‌گوید من اولین گناه را مرتکب شدم برید پیش ابراهیم برید پیش نوح میرم پیش نوح نوح می‌گوید برید پیش ابراهیم من چیزی از خدا خواستم که نباید می‌خواستم ابراهیم میگید من سه بار دروح گفتم برید پیش موسی موسی میگید عیسی عیسی میگید پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برید هست که رسول الله صلی الله علیه و از خدا حق از خداوند متعال میخواهند که که حساب و کتاب شروع بشه. اونجا هست که ترازوهای اعمال گذاشته می شود. اونجا هست که کسانی به زنجیر کشیده می شود و در جهنم خداوند افکنده می شود. بر صورت خودشون. اونها که به زنجیر اونها فرشتگانی اونها, با اونها را با زنجیر می کشن و اونها را سرازیده در جهنم خداوند می کنند، بله جهنم خداوند خیلی سخته. خدا می دونه چقدر امق داره. اونجا هست که بنده را بنده گناهکار و بنده ای که گناه کافر بوده مشرک بوده اونجا او را در آتش جهنم می و کسان دیگر باید هر کسی چه مؤمنش چه کافرش باید از روی پل سرات عبور بکند بعد از اینکه حساب و کتاب شد ما باید به این اعتقاد داشته باشیم مؤمنین همچون رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل نور از روی پل سرات عبور می کنند و سپس درهای بهشتی بر آنها باز می شود و وارد بهشت خداوند می شود و از نعمتهای خداوند برخوردار می شود. از اون رودهای اصل از اون رودهای مشروب از اون میوه های رنگارنگ از آن قصرهای های مجلل اونجا هست که بعد از این نعمتها ها بزرگترین نعمت را خداوند به تمامی مؤمنین میدهد دهد و اونم نگاه به وجه پروردگار اونم بزرگترین نعمتی که بالاتر از اون جمعتی دیگر نیست در روز آخرت ما باید با اینها اعتقاد داشته باشیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند میخواست اللهم متعن بالنظر الى وجهك الكريم خدایا بزرگترین خوشی رو به هم بده و اونم نگاه به صورتت نگاه به وجهت بله ما باید ایمان به روز آخرت داشته باشیم باور قلبی اعتقاد قلبی یقین قلبی باید داشته باشیم نسبت به این اخباری که خداوند گفته نسبت به این اموری که در قرآن وحی شده ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم سپس آخرین بند از بندهای ایمانی که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم و یقین داشته باشیم، انتقام نبی اللهی و ملاکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر و القدر خیری و شری. ایمان باید به قضا و قدر الهی داشته باشیم. خداوند بوده و قبل از خداوند هیچ کس نبوده. پنجاه هزار سال قبل از آفرینش مخلوقات خداوند کلمی را خلقت می کند. بله، خداوند قلم را خلقت می کند. خداوند کلام را خلقت کرده که تمامی اون چیزی که در آفرینش ایجاد می شود را بنویسد حال سؤالی در ذهن ایجاد می شود اون چیزی که در ذهن ایجاد می‌شود خداوندی که قلم را خلقت کرده که همه چیز را بنویسد و نوشته پس ما چرا عمل بکنیم صحابه رسول الله صلی الله علیه و salam آمدند نزد رسول الله صلی الله علیه و و فرمودند یا رسول الله اگر قرار خداوند بداند اگر قراری که خداوند همه چیز را نوشته باشد پس ما چرا عمل بکنیم فلی مل عمل یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و می می‌فرمایند اعملوا فکل ميسر وظیفه شما عمل کردنه شما وظیفه شما علم خدا نیست و خدا خداوند هیچ وقت شما را با علم خودش نمی نمی‌کند. شما باید عمل بکنید. چون انسان نمی‌داند که بهشتی هست یا جهنمی هست، دست به گناه خدا نمی‌زند. و می‌آید پایبند به دین خدا می‌شود. می‌آید نمازش را مرتب و درست می‌خواند و اخلاص در عملش را پیشه می‌گیرد. چرا؟ چون می‌ترسد که شاید خداوند اسمش و نامش را در جهنمیان نوشته. و شما عمل کردنه. شما نباید در ذهن شما بیاد که چرا خداوند نوشته چرا خداوند پنجه سال قبل از آفرینش همه چیزها و کارهای ما را نوشته و همه چیزها را دونسته خب پس ما چرا عمل بکنیم بله خداوند هیچ وقت با علم خودش ما را مواخذ نخواهد کرد بلکه خداوند بر اساس آنچه چه ما انجام دادیم ما را می کند و ما را حساب و کتاب می کند پرونده اعمال را می آورد اون چیزی که ماها گفتیم ما من قول الا لدیه رقيب عظیم خداوند رقیب و عظیم گذاشته که هر لفظی که ما میگیم هر کاری که انجام میدیم اونها بنویسن و روز قیامت اون پرونده اعمال خواهد اومد و ماها حساب و کتاب خواهیم شد بله ایمان به روز آخرت و روز رساخیز باید, باید داشته باشیم و ایمان به این که این اعمالی که ما داریم انجام میدیم خداوند از قبل دونسته ولی که هیچ وقت ما را بر اساس علمش محاخذه نمی کند بلکه بر اساس آن چیزی که انجام میدهیم ما را خواهد کرد هیچ وقت خداون ما را محاخذه نمی کند که ما از کشور فلانی، از پدر و مادر فلانی هستیم یا شکل قیافمون اینطوری هست. هیچ وقت این مورد سوال واقع نخواهیم شد در این موارد، بلکه اون چیزی که سوال خواهیم شد درباره‌اش اینکه نماز خوندیم یا نخوندیم، ما میدونیم اختیارش داریم، بریم نماز بخونیم و نخونیم. اینو باید بهش اعتراف داشته باشیم. ایمان به قضا و قدر خداوند، فکر نکنیم این مطالبی که گفته شد، این تعریفی که رسول الله علیه و از ایمان داشتن، شک نکنیم این, این تعریفی فقط در حدیث اومده خیر خداوند فرق بین اسلام و ایمان و فرق بین ایمان و اون مطالبی که در بحث ایمان اومده خداوندم در قرآن بحثش را اوورده مثلا بحث اینکه اسلام غیر از ایمان هست اینکه اسلام اعمال ظاهری هست و ایمان اعمال قلبی هست خداوند چنین میگید در بحث عرب قالت ال اعراب قل لم تؤمنوا ولیکن قولو اسلمنا اعراب بادی نشینان اونهایی که ایمان در قلبشون راسخ شده بود در بحث ایمان به روز آخرت و فرشتگان و پیامبران خداوند در قلبشون به یقین رسیده بودند خداوند گفت نگید که ما ایمان آوردیم بگید که ما مسلمان شدیم یعنی باید شما وظیفه اسلام خود رو انجام بدید یعنی باید روزه را رو بگیرید حج رو انجام بدید هرچند که شما علم شما توان اینکه درد داشته باشید نسبت به مسائل فرعی ایمان توان این قضیه رو ندارید هرچند که ماها مکلفیم که باید دنبال ایمان باشیم دنبال به این باشیم که ایمان خودمون را بالا ببریم مؤمنین شأنشون چنینینه هرچی بیشتر قرآن میخونن با تدبر هرچی بیشتر دنبال علم به خدا میرن ایمانشون بالاتر میرود به نص آیه قرآن و اذا تلت عليهم آياته زادتهم ایمانا اگر آیات پروردگار بر اونها بر مؤمنین خوانده بشه تلاوت بشه ایمان آنها قویتر تر میشود ایمان آنها بالاتر میشود هرچی ما بیشتر دنبال قرآن رفتیم هرچی ما بیشتر نماز خوندیم هرچی در دینمون با بصیرت بیشتر شدیم اونجا هست که ایمانمون قویتر میشه بله نباید اعتقاد داشته باشیم که این چیزها را رسول الله صلی الله علیه و وسلم گفته و از خودش گفته خیر همین مطالبی که ما در سنت داریم در این حدیثی که جبرئیل شنید از رسول الله صلی الله علیه و وسلم سؤال می‌پرسد همین مسائل رو ما در قرآن داریم که خداوند می‌فرما آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آمن الرسول ایمان ورد رسول و همچنین مؤمنانی که همراه رسول بودند ایمان آوردند به چی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل بالله وملائکته و کتبه و رسوله. بله، اون صحابه و رسول الله ﷺ ایمان وردند به آنچه که نازل شده از کتاب خداوند، از وحی خداوند. و ایمان آوردن به الله و ایمان وردند به ملاکی خداوند و ایمان وردند به بملا... ایمان وردند به پیامبران خداوند. ما باید به اینها اعتقاد داشته باشیم. بله، نه یک جا در قرآن، در جاهای دیگرم در قرآن. همی مطلب رو بیان می است چنان که خداوند در قرآن میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والكتاب والنبین بل بر منیکی یتی شی هست ایمان داشته باشیم به الله و ملائکاش و آسمانیش و و همچنین به روز آخرت ولیوم الاخیر ایمان داشت باید داشته باشیم از بر و نیکی از اسلاممون اینه که باید ما به اینها ایمان داشته باشیم من قسمت قضا و قدری که در قرآن اومده خداوند در قرآن میفرماید ان کل شیء ان خلقناه بقدر هر چیز ان کل شیء ان خلقناه بقدر هر چیز را ما با تقدیر سابق با علم سابق خلقت کردیم یعنی ما هر چیزی که میشوته را گفتیم و اون قلمی که خلقت کردیم اونها را نوشته و ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم تقدیر سابق بوده مقدراتی سابق بوده حالا چیزهایی که خداوند در لوح محفوظ دستور میدهد که اون قلم بنویسد و چیزهای دیگر از قضا و قسمتهای الهی که خداوند کونن و در آفرینش خودش قرار داده از اون چیزی که در آفرین آفرینش هست در کونش هست ما باید بهش تسلیم بشیم این نسبت به قضا و قدر خداون تسلیم بشیم نه که تنها اعتقاد داشته باشیم خدا دونسته و قلم نوشته بلکه باید اعتقاد داشته باشیم که آن چیزی که شده به خیریت ما هست اون چیزی که خداون برق زده ما باید بگیم که خداوند چرا اینطوری کردی چرا ما را در این زمانه خلق خط کردی؟ چرا ما را به این مصیبت ها کردی چرا یکی فقیر و دیگری تاجر و سروتمند چرا پدر من یا فرزند من رو از من گرفتی ما باید به قضا و قسمت الهی که خداوند نوشته با اعتقاد داشته باشیم و با قبول داشته باشیم که این قسمت خداوند به عنوان امتحان قرار داده که ما را امتحان بکند آزمایش بکند اینها آزمایش خداونده بحث قضا و قدر خداوند اون قسمت هایی آنها. امتحانات الخضواندة وخضواندة ميجال ولا نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ما شمارة امتحان ميكونين از نقص در مال از نقص در فازن ودير و وبلها ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ايو فكه هديد هم يتوري ورد بهش بشيد خير شوابات امتحانش شو وكاس بدين شوابات اخلاص خودتون راه طاولش رو پس بدید که خدا, خدا مشخص بکنه که آیا واقعا ما خالص هستیم یا نه مثل اصلی که از کندو گرفته میشه و شیری اصل جدا میشه از لابلای پارچه از پارچه یا صافونی که انسان میذاره اون اصلی که پاک میشه ایمان انسان باید پاک بشه و پاک نمیشه ایمانمون مگر با این امتحانات و ها و قضا و قدر الهی ما باید به با اینها اعتقاد داشته باشیم و در مقابلش تسلیم باشیم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و الله علی محمد و علی محمد